با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان عزیز تلویزیون رنگین کمان بخش هدهم همه برنامه کسروی را شروع می کنم. در بخش گذشته تا اونجا رسیدیم که کسروی در مدت وکالت خودش کارهای علمی فراوانی کرد از جمله کارهای مفیدی که انجام داد به خود یاد گرفتن زبان ارمنی بود این زبان ارمنی بعدها در نوشتن تاریخ کمکهای فراوانی کرد چون تاریخ آزربایجان با تاریخ ارامنه تقریبا همراه بودند هم مسیر هستند و به همین دلیل کسوی توانست مطالب بیشتری بررسی کنه و به غنای تاریخی که نوشته اضافه کنه خودش می نویسد زبان ارمنی دو تاست یکی کهن البته اینو رو در جلز آخر جلسه هده همم هم عرض کردم فقط برای اینکه بتونیم مطلب رو ادامه بدیم زبان ارمنی دوتاست، یکی کوهن یا گراپار و دیگری جدید یا اشخراپار و ادامه میدهد هر دوی آنها دشوار است من نیاز بیشتر به گراپار داشتم به زبان قدیم که دشوارتر می باشد یکی دیگر از کارهایی که کسری در این مورد انجام داد ترجمه کتاب کارنامه اردشیر بابکان بود که از زبان پهلوی به زبان فارسی برگردانید خب پس از یک سال حدود یک سال و دوباره وزارت عدلیه احتیاج به کسبی پیدا می کنه اصولا همیشه محتاج کسبی بود وزارت عدلیه محتاج به انسانهای درست کار و صادق و دقیق و قاطع که اوصاف کسوی بود در پاییز 1307 وزارت عدلیه کسوی را دوباره به کار خضاوت دعوت کرد کسوی بنابرای تجربهش کار و کالت را به هم نزد دفترش را به دست وکیلی سپرد تا اگر روزی دوباره نیاز پیدا کرد بیکار نماند و همینطور هم که خواهیم دید شد کسروی از همون ابتدا به محاکمات سر و صدا انتصاب شد ولیکن در یک محکمهی که به نام محمد باقر بود و در دیوان جنایی انجام میشد محکمه کسری میگوید که چون داور میخواست در اینجا مداخله بکنه در امور غذایی از همان اول مرا کنار گذاشت با این همه مدتی بوده و بعد داور این کسری رو حالا میگیم چرا؟ میگه از همان اول به خاطر اینکه با حقکشیهای داور همراهی نکرده بودم از این محاکمه مرا کنار گذاشتم این اولین محکمه در مورد یکی از قاتلان سنگدری بود که میبایست به سزای اعمال خودش برسد ولی ما میبینیم در اینجا که چگونه حتی قاتلان رانیز از دیگه بزرگان عدلیه کسایی که درست نیستند وجدان دقیق ندارند حتی قاتلان رو هم تبریه میکنند. کنند مینویسد می که این محمد باغر اهل گلپایگان بود که در کازوین سکونت می و هفت نفر را با داروی روباه کشته بود داروی روباه حالا یک سم میگه مثلا اسمش داروی روباهی که کسیمی به اشاره میکنند می نفسد پس از دستگیری وی میان شهربانی که رئیسش درگاهی بود و عدلیگه که وزیرش داور بود اختلافاتی در چگونگی محاکمه پیش آمده بود به ترتیب ترتیب شهربانی برای اینکه مقام خودش رو در کشور بالا ببره و کارش رو خیلی مهمتر از آنی که بود جلوه بده پرونده را به روزنامه ها داده که غیر قانونیه قبل از اینکه طرف محکوم بشه، نشد، نشده باشد حق ندارند عوامل پلیس و شهربانی یک انسان رو مقصر و گناهکار جلوه بدن زیرا که هنوز محاکمه نشده و او محکوم نشده به هر حال شهربانی پرونده را به روزنامه ها داده و در حدود یک ماه آن را تحت عنوان جنایتی عظیم مورد تبلیغات قرار داده و مردم را به هیجان آورده بود ولی از طرف دیگه کسایی مینیوسه داور هم چون این عمل شهربانی رو بر نمی‌تابید زیرا که از دید وزارت عدلیه نباید قبل از حکومت هم کردم قبل از محکومیت گناهکار و جنایتکار شناسوند در جامعه به این دلیل با درگاهی در افتاده بود و این محاکمه را حتماً میخواست بر خلاف خواسته شرفبانی انجام بده. داور نیست اینکه کسری می‌نمزد ولت اینکه قبل از محاکمه هیچ کس را نمی‌توان مرجم شناخت با درگاهی به مقابله بر و در نظر داشت که بار جنایت را از پرونده محمد باغر بشوید که خود یک جنایت دیگری است هفت نفر را کشته خون هفت نفر را و خانوادی آنان را به باد دادن است لیکن کسوی که یکی از قضاد بود حاضر به همکاری با داور نشده بود و لذا او را از این محکمه کنار گذاشته بودند خب کسوی بالاخره گویا آن طوری که نوشته کسوی این جانی را طوری محاکمه کردند که از بار جنایتش از بار گناهانش خیلی کمتر جلگه داده شود در این زمان کسروی را به عنوان رئیس محاکم بدایت در وزارت عدلیه انتصاب نمودند در روز 28 دی ماه هفت کسروی حکم ریاست کل محاکم بدایت را از عدلیه گرفت کسروی به مدت 18 ماه در این فوست با بدی ها و ستم ها و زورگوی ها نوارد می کرد. و این مدت را جزو بهترین روزهای زندگی خودش شمرده است خودش در این باره می که این هشته ماه روزهایی می بود که روان من در جنب و جوش سختی می دود و حال دیگری داشتم از جمله از کار فرسوده نمیگردیدم. از نبعه با ستم و بدی لذت می <تصفيق> این مطلب رو هم باید اضافه کنم که بنده در هر مراحلی در هر ای که از کارهای نیک کسوی سخن میگویم البته کسبی دلیل نمیشه که همیشه کارهای نیک کرده کارهای بدی هم کرده که ما در آینده اگر فرصتی بود در اون باره هم سخن خواهیم گفت هر که بامش بیش برفش بیشتر کسری با این مقام و با این موقعیتی که داشت گناهی که کرد در آینده خواهیم دید گناه خیلی بزرگی بود حال میگذریم از این از رمله کارهای معتبری که در این مدت انجام داد در مدت ریاست بدایتش تعلیف کتاب خیلی معروف است به نام شهریاران گمنام من این کتاب را آوردم شهریاران گمنام احمد کسروی امیر امیرکبیر و این چاپی که من دست دارم تهران 2500 سی و هفت منتشر شده و این هم رفرانسش تاب به قول معروف این کتاب حدود 600 سد و چهل و صفه من اینجا میبینم این کار رو انجام داد که کار عظیمی بود یکی دیگر از کارهایی که کسیمی انجام میداد بر درگیریه سختش با وکلا هایی گردن و بود وکلا وزارت دربار و همچنین خود داور وکیلان مجزایی داشتند به خود انتخاب کرده بودند و این وکیلان بعد اتکاب دربار و داور زورگویی میکردند در محاکم و حاکم را و قاضی را تحت تأثیر قرار می دادن. و اونچه که دربار میخواست و یا داور میخواست به کرسی مینشوندن و این کاری بود که کسوی در اون فقط یکی از اهداف مهمش مخالفت با یکون این کارهاییست و بنابراین با دو تن از بزرگترین وکلای آن روز وکیل دربار و وکیل داور در افتاد. می که در آن تاریخ دو تا وکیل گردن کلوف در وزارتخانه وجود داشت که به لحاظ آشنایی با شاه و یا با داور دیگران را به هیچ می و در محاکمات نیز نفع موکل خود به نفع موکل خود زورورزی میکردند. می در مورد این دو وکیل می یکی از آنها فازل ملک نامی بود که گذشته از دوستی با داور وکیل دربار نیز بود و در این حال نماینده مجلس نیز بود. فازل المالک این بود که همان که به دادگاه در آمدی و نشستی سخن را به دینسان آغاز کردی. میگفته که ولی دیروز شرفجاب شده بودم برای اینکه که تحت تأثیر بده قاضی رو میگه یه چین حرفایی هایی میگفت دیروز شرفجاب شده بودم یعنی من در خدمت پادشاه بودم علا حضرت فرمودند خب وکیل باشی کارهای ما در عدلیه چطور است عرض کردم خوب است ما که دعوای ناحق با کسی نداریم دومین وکیل هم که کسری با اندر افتاد اسمش شریعت زاده بوده که گذشته از دوستی داور همراز اونیزمی بود که هر کاری که دادران سودی یا دلخوشی داشتی و کالتش به این واگذار شدی همچنین اونیز نماینده مجلس می بود شریعت زاده نیست همان که رسیدی و کاری داشتی چونین گفتی دیشب با حسط اشرف بودیم مخصوصا در همین موضوع نظر ایشان را هم جلب کردم مخصوصا در همین موضوع نظر ایشان را هم جلب کردم کسی که کارش و هدفش همیشه مبارزه با زورگویی و حقوشی ها بود به جدال این دو تندر را یکی از درگیری هایش با وکیل اولی به بود میگه در آن تاریخ حدیه عدلی نوین برای مکلای دعاوی لباس محتحد و شکل وکالت را اجبار کرده بود یکی از کارهای اونی که غزا شاق دیگر موکلا را از لباس ملایی در وقت بیرون در اون تاریخ خاصی هم ملا بود و اغلب هم ملا بودند دیگر ما ملایی در اونجا نمی دیدیم لباسهای رسمی به سبک قرد تمیز درست کرده بودند و باید این آ ولی این این لباس شده می پوشید. می که ادلیعه نوین برای وکلای دعاوی لباس متحد شکلی متحد شکل وکالت رو را اجبار کرده بود. لیکن این دوتن به لحاظ آشنایی با شاه و وزیر و نیز داشتن پست نماینده پارلمان قلدوری کرده و لباس مزبور را نمی پوشیدن این رفتار آنان را بهانه کرده و به مقابله پرداخت در فازل الملک فردای آن روز آقای فازل الملک آمد نخست رو من تبریک گفت فردای آن روزی که حکم رئیس بدایتش رو گرفته کسطای این آقا میاد تا تبریک میگه و به من تبریک گفت و سپس سخن از شاه راند ولی هنگامی که خاص بر روی صندلی محاکمه بنشیند من گفتم چون رخت رسمی نمی دارید نمیتوانم به عنوان یک وکیل بپذیرمتان از این سخن من میگه یک و گفت آقای وزیر به من اجازه دادند گفتم چیزی به ما ننوشتند گفت به علاوه من نماینده مجلس هستم یک ساعت به عدلیه میایم و یک ساعت به مجلس می میروم من که نمیتوانم ساعت به ساعت رخت خود را عوض کنم گفتم این راست است ولی عذر ما نتواند بود چون دید من در گفته خود استوارم با برخواست رفت فردایش همان داستان را با شریعت انجام دادم و اون نیز رنجیده بیرون رفت بنابراین از همی اول برایش فرقی نمیکند که کسانی که ازش میرنجند میان در دنبالش کارهایی بر عدهیش انجام میدن فقط و فقط عشقش مبارزه با فساد و خودخواهی ها بود و همین هم عاقبت شوی برایش بباره خب یکی دیگر از کارهایی که کسری انجام میداد به قول خودش فرونده های شناسنامهی میگه که مجلس به دستور شاه سربازی رو خدمت اجبار سربازی رو تصویب کرده بود و همه باید میرفتن سرباز یکی از کارهای مفید رستا شاه بود باید گفت حقیقت رو باید گفت تاریخ رو تحریف میکنم. تاریخ تحریف بزید نیست انسان های درست و شریف باید واقعیت رو بگن تحت تأثیر اعتقادات دینی و عقیدتی قرار نگرفته تاریخ این مملکت رو عوض نکنم. تاریخ شناسنامه این مملکت یکی از کارهایی که کسبی تصریب مجلس خدمتش بایی جوانان بود و با این عملش امنیت و استقلال ممکت رو باز خرید. میدمیسه به دنبال قانون نظام وظیفه به وسیله رزاشا گروهی از مردم برای فرار از خدمت سربازی به تلاش افتاده بودن کسری به لحاظ ارق پرستی و حمایت از آن قانون و بالاتر از همه به خاطر ان... با این عمل به مبارزه برخواستی بود اغلب توانگران به خاطر معافیت فرزندان خود از سوی بزرگان کشور حمایت می و این نقطه اعتراض کسری بود می نویسد که از بین نزدیک به چهل پرونده نوید و پنگ درصدش در دروغ می و به همین دلیل من تصمیم به مخالفت با این گونه پرونده ها کردم ادامه می دهد که از بین این پرونده ها دو پرونده از پسرهای پسر های دو تن مستشاران تمیز تمیز می بود که, که مستشاران دیگر جواهی نوشته بودند یکی از آنان جوانی که منشی اداره محاسبات ادلیه نیز بود از حال داده و تصحیح شناسنامه درخواست کرده بود آنگاه روز محاکمه در یک از یک سو سفارشی از آقای بهرامی معاون وزارت از دیگه گرفته و از یک سو فازن همون وکیلی که صحبتش رو کردیم یاسایی را برای میانجیگری یاسایی هم یکی از خود بود و نماینده مجلس و این یاسایی اگر همون باشد مترچمه متبخریم بود یاسایی را برای میانجیگری و خواهش خودش همراه به دادگاه آورده بود ادامه میدهد چون محاکمه جا پرونده را برداشته به کیف خود گزارده به وزارتخانه به نزد آقای بهرامی معاون وزارتخانه رفتم و گفتم من ریاست بدایت را پذیرفتم ولی شرطش آن است که در رعی های خود آزاد باشم اگر این شرط پذیرفته نیست بهتر است بیگفتگو از هایم و به کار و خود بردازم وحرامی جواب میده مگر چه شده؟ چه کسی میگوید شما آزاد نیستید؟ میگه گفتم امروز در فلان محاکمه سفارشی از شما آوردند. گفت من آن سفارش را به خاطر وزیر نوشتم شما نادیده بگیرید بنابراین میبینیم که همزمان با انجام وظیفه حق کجا نشان از مشکلاتی میبینه، حق میبینه فساد که جای خودش داره به مبارزه با سرسختی به مبارزه میبینه یکی دیگر از کارهای کسری مبارزه با خلافکاری های مستشاران تمیز بود کسوی اینکه در در وزارت عدلیه در تمام وزا... بسلاش و شعبات عدلیه در تمام ایران معروف شده به عنوان یک قاضی سرسخت یک قاضی درستکار یک آدم صدیق معروف شده است بویژه زندگی مستشاران تمیز را از دید اجتماعی اخلاقی رفتاری بررسی میکند آنچه که کسروی در این مورد نوشته ما بارها گفتم برای ما یک سندی داده بر ادامه مطالعاتش هیچ کسی جرد نمی کرد از دادگاه از عدلیگه نوین رضاشاهی شاهی این چونین به ما آگاهی بدهد می نویسد که این را بنویسم که آلوده‌ترین ترین بخش دیگه دیوان تمیز می راست است که مستشاران آنجا در بیرون پاک دامن شناخته شده بودند ولی در نهان ناپاکتر از دیگران می و در راه سود خود به قانون و دادگستری ارجی نگذاردند علت این ازار را چون ادامه می دهد آنان افزار دست وزیران می که دستورهای دلخواهانه آنان را به جای قانون به کار میبستند. وزیران زیران نیز البته عرض شناسی نموده به ایشان پول ها می یکی از عواملی که موجب قدرت هرچ بیشتره کستمی شد این است که او را به در با حفظ سمت ریاست محاکم بدایت به عنوان رئیس اداره اجرا هم انتصاب نمودند. سرری معلوم است با صداقت و با همینیت و درستکاری بدون شک همیشه این ابلی دارد چه می توان کرد اینگوونه آدم ها رو باید جذب کرد یعنی خواهیم دید که چگونه او را از ادلیه این سخن بعدی است. صفحات بعدیست، شاید بخش بعدی باشد دلیه امروز به مسئله ریاست اجراش میپردازیم میگه من کار میکردم، من تلاش میکردم با این همه کارهای اجرا انجام نمیشد معمولا اداره اجرا مسئول اجرای احکام که صادر شده و این آقایون معموران اجرا گروهی از کارمندان کارکشته کشته رشوه خواری بودند سخن کسوی است که پول گرفته و حق مردم ضعیف را پامال میکردند میگه در این میان معاون وزارتخانه که هم آقای بهرامی بود کسوی رو و دفتر خودش دعوت میکنه و در بین سخنان از او از وضع اجرا گله میکنه میگه ما موندیم در دست این اجرا اینا آقا این کار انجام نمیدن ما نمیدونیم چیکار بکنیم شما بیایید این اداره اجرا رو هم به عهده بگیرید چون شمایید که میتوانید از اخته اینان در بیایید کسلی با کمال میل قبول میکنه حالا هم محاکم بدایت در اختیارشه هم اداره اجرا و در اینجا به حساب حق پوشی ها میرسه من یک یا دو تا از این مشکلات که برخورد کرد و حل کرد این مشکلاتش رو اشاره میکنم تا به این بخش پایان بدهم یکی از کارهای خیلی خیلی معروفش در این پست در با حاج حسین امینوزر بود این حاج غوزین امینوزر سابقه تاریخی داره پدرش حاج محمد حسن از یکی از تجار خیلی معروف و در این حال سیاست معروف بود و اون آدم پیش, پیش بود کسی بود که خدمت کرده بود به مملکت ولی این فرزندش یکی از افرادی بود که پروندهش اومده بود زیر دست کس سری میگه به شخصی چهار هزار تومن به بوده که در دادگاه این قبلا به پرداختان محکوم شده بوده لیکن به علت اینکه را راضی کرده بود رشوه میداده خدمت میکرده به اونا بعد وقت طلبکار به مدت دوازده سال به دنبال طلب خود دویده بود و بالاخره هم به مثال پولش نایل نیامده بود طلبکار با در دست داشتن ابلاغ اجرای طلبش به دیدار کسری میآید و شکایتش را پیشون مطرح می کند پس از رسیدن کامل به پرونده اقدام به گرفتن طلب می از شکه سیاسی که آدمه کردن گفتی که در تمام ایران همیشه پارتی داره حمایت میشه ازش که آن مرد گفتم بنشین. مردی که طلبکاره دوازده ساله دویده بدون باله طلبش ولی به دست نهی برده میگه همون جا که پرونده میخونه به این مرد میگه بنشین در دفترش. نشست فرستادم از اداره اجرا حالا رئیسیشم هست پرونده خواستم اجرا جانیز آمد پرونده را از دیده گذرانیده به مأمور دستور داده و گفتم ببینید به شما دستور میدهم همه اکنون به خانه امین برو و از فرشهای بیرونیش به اندازه پول این مرد یعنی به اندازه غرضش بازداشت کن باید تا یک ساعت دیگر بازگردید و راپورت کار خود را به من بدهید که ادامه می که بیست دقیقه از حرکت ایجا نگذشته بود که پسر امین و شتاب زده از در, از در دادگاه در آمد. نشست و گفت شنیدم دستور فرموده اید بیایند و اموالی از خانه ما توقیف کنند گفتم آری گفت چرا کم لطفی می فرمایید؟ گفتم این سخنها را بگذار کنار دوازده سال است که محکوم شده اید و با رشوه دادن به معمور اجرا سردوانی دید یا, اح... یا همین اکنون پول نقد می دهید یا دستور همان است که دادم آن معمور بدجنسی را که به شما تلفن کرده یعنی اینکه بیست دقیقه نکشیده میاد معلومه که معموری که دستور داده بره رو توقیف بکنه قبلا زنگ زده به اینها گفته که آمیان اموال تو توقیف کنم و به همین دلیل اومده با کسریم آمده بکنه و به همین دلیل کسریم میگه آن مامور بدجنسی که به شما تلفن کرده و با این کتاب آمده اید را نیز اخراج خواهم کرد می این سخن را که روی به محکوم الله محکوم الله همون کسی که طلبکار بود که در اتاق حاضر بود کرده خواهش کرد که دو هزار تومان در همان جا نقل بدهد و دو هزار تومان بقیه نیز چند روز مخلط دهد و مشکل حل شد و هاست برمیگردم به کارهای علمی کسری تا این بخش رو خاتمه بدم یکی از کارهاش که کارهای کسری که علمی هم بود آشنایی و دوستیش با عارف قزوینی شاعر معروف و حماسه سرای کشور ما بود در زمستان سال 1308 کسری به همراهی گروهی تحت عنوان هیئت تفتیشیه غرب بشوی عراق و همدان حرکت کرد در آن مسافرت که سرما و یخبندان و برف در آن منطقه مشکلات فراوانی ایجاد کرده بود معموریتش را به مدت دو ماه انجام داده بود یکی از نتایج این مسافرت دیدار و دوستی کسوی با عارف غصوینی شاعر معروف شاعر معروف دوره شاه بود در آن تاریخ عارف خود را از زندگی اجتماعی کنار کشیده و در همدان پوشهگی شده بود ملاقات کسوی با عارف را از زبان خود وی میشنویم مینویسد عارف به دیدن من آمد به آشنایی پدید آمد من با دوستان گفتگو کردم که چون به او سخت می پوری پولی از میان خود و دوستانمان من آورده به او بدهیم عارف این را شنیده و دل آزرده شده بود به نزد من آمده گله کرد این گردن فرازی و بینیازی او به من خوش افتاد مثل خودش دیده آدم بینیاز و همین مایهٔ دوستی میان من و او شد که تا زنده میبود نامه با هم باهم کردیم یکی دیگر از کارهای او کار علمی بود پژوهش اسامی دهات کسوی نام هشت هزار از دهات را در این مسافرتش گرد آورده و به مطالعه در آن مورد پرداخت که پایی تعلیفات و مقالات و کتابهایی شد که بعدها آه نوشت و انجام داد و از این اسامی پی به تا حدودی به شناسنامه دهات برد که آیا این منطقه دوره قدیمی از ضرفش مانده دوره عرب دوره که دوسترا را شناسهایی کرد آخرین مطلبی رو که در این باره میگم تا بخشم رو تمام کنم که به صداق درگیری کسبی با بزرگان مملکت بود که میخواستن سو جویی بکنن سو استفاده بکنن در آخر سال هزاری بود که کسری به عنوان یک قاضی در شناخته شده و سنت دیوین روابط اجتماعی را در قلم روی قضاوت خیشتن به هم ریخته و به مبارزه با کردن فرازان میپرداخت. به دین معناه که معمولا در روابط اجتماعی مردم کشور ما اغلب صاحبان قدرت و نفوذ به ناتوانان و ضعفا زور ورزی میکنند و حقوق آنان را به نفع خود پایمال می کند نیکن کسری در چارچوب قدرت قضایی خیش با این روابط زشت و غیر انسانی به مبارزه پرداخته بود یکی از آن کسانی که کسری بر علیه به حکم محکومیت داد مهدی بولی هدایت مخبر سلطانه بودی مهدی بول هدایت دو تا کتابم نوشته که جامعه پرش و پاتشاه در طوری پرش و پاتشاه هم زندگی کرده نارستنی شای، مزفردی شا، محمد شا، احمد شا و این آدم تمام زندگیش در مقام بالا بوده از مستخدمین دولت بوده، از قدرتمندان بوده در این تاریخ که ما صحبت کنیم وزیر دارایی رزا شاهه مخبر سلطنه که وزیر خودش می نمیزی کسیمی مخبر سلطنه که وزیر دارایی می بود با زنی از طبقه پایین بر سر زمینهای بیرون زمینهای بیرون دروازه شمیران محاکمه داشت از جایگاه خود به سودجوی برخواسته و یک پرونده کهنی را به گردش انداخته بود وکیلش به نام میزا حسین علی شهیدی ای نوشته بود و نافهمانه در این لایه با این مطلب شروع شده بود در پیشگاه نافهمانه در این لایه جمله حسب العمر به کار برده بود این واجبه کسوی بد افتاده بود حسب یعنی که تو در اینجا با این زن هم هممرامی ما مرا مورد تأثیر قرار بدهی که شدنی نیست می نویسد که من این واژهش را نکوهیده یا فریاد برآوردم در پیشگاه قانون مخبر سلطنه وزیر دارایی با فلان زن بیکس چه جدایی میدارد و چون دعوا نیز بیدلیل بود رأی به زیانش دادم مخبر سلطنه را که هرگز گمان نبرده بود مخبر سلطنه چیزی را که هرگز گمان نبورده بود با چشم خود دید قسمت هیشده بخش هیشده سخن در باره کسدی را هم در اینجا به پایان می رسودم.